به زندگی انسانها بیشتر توجه می کردند بعضی از اونا به کودکی که تازه متولد می شد های زیبا و باشکوهی می دادند بعضی دیگه هم که مهربون نبودند به کودک بیچاره بدبختی و سختی هدیه می کردند ای که ما در این داستان از او صحبت می کنیم، نه خیلی خوب بود نه خیلی بد فقط راه و روش خودشو داشت وقتی نوزادی به دنیا می اومد چیز با و جالبی هدیه می کرد اما به همون اندازه هم سختی و غم بهش میداد. روزی ملکه پسری به دنیا آورد پری وردی خوند و این پسر اونقدر زشت شد که وقتی مادرش اونو دید جیغ کشید و فریاد زد آه تفلک بیچاره من تا به چنین بچه زشتی به دنیا اومده؟ ملکی از پری خواهش کرد که چهره ای خوب بهش بده. ای پری میتونی به جای چشمای چپ چشم سالم بهش بدی؟ یا اینکه قوز پشتش رو از بین ببری؟ یا دست کم دماغی بهش بدی که شبیه چغندر نباشه؟ یا قدشو بلند کنی به جای اینکه و قط کوتاه باشه؟ اما پری پاسخ داد که او نمیتونه چیزی رو که بخشیده عوض کنه. بعد گفت با این حال پسرت خوبی هایی هم داره به همون اندازه که زشته باهوش خواهد بود. مادرش گفت خوب فکر میکنم این از همه چیز بهتر باشه. اما پری ادامه داد همچنین بهش این قدرت رو میدم که بتونه زنی رو که بسیار دوست داره مثل خودش باهوش کنه. بعد از گفتن این جمله پری ناپدید شد. ملکه امیدوار بود با بزرگ شدن پسرش از زشتیاش کم بشه اما انتظاری بیهوده بود پسر هیچ تغییری نکرد تازه مشکل جدیدی هم پیدا کرد روی سرش دسته ای مو به صورت کاکل در اومد خیلی هم زود اسم او را گذاشتن ریکت کاکل به سر ریکت بی نهایت زشت بود اما در عوض بسیار بسیار باهوش بود ریکت کوچولو از توی تختخواب میتونست کسانی رو که سالها در زمینه سیاست تجارت و علوم کار میکردند راهنمایی کنه این موجود کوچولو میتونست سختترین محاسبات رو ذهنی انجام بده و هر هفته زبانی جدید یاد بگیره کمی بعد از تولد ریکت ملکهٔ کشور همسایه دو دختر به دنیا آورد در هر دو مورد هم پری حاضر بود به دختر اول زیبایی استثنایی هدیه کرد مادر سربلند به وجد اومد و فریاد زد چه کوچولوی زیبایی و در مورد زیبایی دخترش با همه صحبت کرد شاید صحبت او باعث شد که پری بگه دخترت زیبایی داره اما عقل نداره او زیباترین و نادانترین شاهزاده دنیا خواهد بود. ملک غمگین شد و با شکایت گفت: اما زیبایی بدون عقل و خرد مثل کره بدون نانه که نمیشه خوردش. پری گفت: چیزی که داده شده داده شده. اما به او این قدرت رو میدم که بتونه مردی رو بسیار دوست داشته باشه و وقتی اونو دوست داشت بتونه مثل خودش زیباش کنه. کمی بعد ملکه دختر دیگه ای به دنیا آورد. بار دیگه پری حاضر بود و ملکه امیدوار بود که این دفعه هم زیبایی و هم عقل بهش بده. اما ملکه بعد از دیدن نوزاد مانند مادر ریکت از ناراحتی فریاد کشید و گفت وای چه موجود کوچولوی زشتی اوه کوچولوی بدبخت. پری گفت شاید زشت باشه، اما عقلی داره که خواهرش نداره. به این ترتیب ملکه راضی شد. دختری داشت زیبا و نادان و یه دختر دیگه که زشت و باهوش بود. پری اینطور میخواست و ملکه نمیتونست سیچ کاری کنه جز اینکه قبول کنه. این دو خواهر مثل بقیه خواهرا با هم دعوا نمی کردن و به خاطر چیزهای خوبی که داشتند همدیگر رو تحسین می‌کردند البته خواهر بزرگتر فکر می‌کرد که شانس نداره زیبا بودن خیلی خوب بود اما بعد از اینکه پنج دقیقه نگاهت کنن و از چشمان و موها و لبها تعریف کنن بعد چی اگه نتونی اسم اونا و حتی اسم خودت رو به یاد بیاری اگه ندونی خورشید روز در میاد یا شب خب خیلی زود ازت خسته میشه بعد میرن سراغ خواهری که ممکنه به نظر زشت بیاد اما خوب میتونه صحبت کنه و زیرک و باهوشه تازه این شاهزاده زیبا به اندازه نادونیش دست و پچولفتی هم بود نمیتونست و اتاق قدم بزنه بدون اینکه که بلغزه حتی نمیتونست شام بخوره و روی لباسش نریزه مادرشم از دستش خسته شده بود. بلک ناله می کرد آیا تا به حال چون این دختر نادانی در دنیا بوده؟ شاهزاده می دونست چنین چیزی نبوده. بنابراین وقتی مردم او رو دست می داختن اونا رو سرزنش نمی کرد. روزی اونقدر غمگین شد که تنهایی رفت به جنگل. به همون جنگلی که دو کشور رو از هم جدا می کرد. هنوز چند قدم نرفته بود که با زشتترین مردی که تا به حال دیده بود روبرو رو شد. مرد لباس فاخری به تن داشت طوری که به نظر دختر زیبا رسید که او شاهزاده است. البته همین طور هم بود. این مرد ریکت کاکل به سر بود. ریکت از بخت خودش متعجب بود. زیرا هرگز شاهزاده رو ملاقات نکرده بود اما عکسش دیده بود و خیلی او را دوست می داشت. ریکت خودش رو به شاهزاده معرفی کرد و پشت سر هم از زیبایی او تعریف می کرد ریکت موهای طلایی‌اش، عمق چشمان آبیش و وقار راه رفتنش و خیلی چیزهای دیگر رو ستایش کرد. اما شاهزاده خانم زیبا با اینکه چیزها را صد بار شنیده بود، بیشتر از قبل ناراحت شد. ریکت با همه عقل و هوشش فکر کرد اما به ذهنش نرسید که چرا شاهزاده ای به این زیبایی غمگینه؟ بنابراین فکر کرد راه عاقلانه اینه که با روشی معدبانه طوری که بهش اهانت نکرده باشه علتش رو بپرسه. ریکت گفت خانم محترم من خانمهای بسیار زیبایی دیدم اما هیچ کدوم به پای شما نمی رسن. شاهزاده در ذهن خود به دنبال پاسخی میگشت. بارها در مورد هوش سرشار ریکت حرفهایی شنیده بود دلش میخواست کم حرف بزنه تا نادانیش مشخص نشه از این جهت پاسخ داد شما لطف دارین ریکت کاکل به سر ادامه داد زیبایی امتیازه اگه من یک کمی از زیبایی شما رو داشتم مطمئنم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردم. شاهزاده خانم که خیلی احساس ناراحتی کرد گفت فردا تمام زیباییم رو با تمام خوبیهایی که برای من داشته به تو میبخشم و بدون اینکه مکس کنه تا بفهمه چی میگه ادامه داد من ترجیح میدم باهوش باشم اگه حتی لازم باشه که به اندازه شما زشت باشم اگه دختر باهوشتری بود میتونست به یه شکل دیگه این مسئله رو بیان کنه اما ریکت ناراحت نشد و گفت شاهزاده بیشتر از اون که فکر میکنید باهوش هستید کسانی که فکر میکنن باهوش نیستند اغلب هستند و برعکس شاهزاده اخم کرد و گفت همه یه من همینه همه یه چیزی که میدونم اینه که من نادون هستم به خاطر همین اونقدر بدبخت هستم که آرزو میکنم بمیرم ریکت کاکل به سر متوجه موضوع شد و گفت مطمئنم که چنین کاری نمیکنید اگه نداشتن عقل تنها چیزیه که شما رو ناراحت میکنه من میتونم در یه لحظه اونو به شما بدم. شاهزاده خانم با ناباوری نگاهش کرد و تا میتونست با دقت به حرفهاش گوش داد. ریکت ادامه داد وقتی به دنیا اومدم یه پری قدرتی به من داد که به هر زنی که دوستش دارم هوش و ذکاوت بدم. الان شما همون زن هستید. اگه با من ازدواج کنین به اندازه من باهوش میشید. ازدواج با او شاهزاده خانم اونقدر گید شده بود که نمیتونست جواب بده. ریکت کاکل به سر فکر کرد شاهزاده احتیاج به زمان داره تا خوب تصمیم بگیره. بنابراین گفت: البته برای جواب دادن زمان لازم دارید اما شاهزاده عزیز این پیشنهادیه که برای هر دوی ما خوبه و شکی ندارم که قبول می‌کنید. پیشنهاد میکنم سال بعد همینجا همدیگر رو ببینیم. در این صورت میتونید جواب قطعی بدید و بعد هم میتونیم ترتیب جشن عروسی رو بدیم. شاهزاده سعی کرد هرچی عقل داره جمع کنه و تصمیم بگیره. او مطمئن نبود که بخواد الان یا بعدن باریکت ازدواج کنه چون خیلی زشت بود. اما از یه چیز اطمینان داشت. هوش رو بیشتر از هر چیز دیگه میخواست. شاهزاده با خودش فکر کرد اونقدر نادونه که اگه الان پاسخی به ریکت نده پنج دقیقه بعد همه چیز رو فراموش میکنه و به این ترتیب برای همیشه نادون میمونه بنابراین بلا فاصله گفت ریکت با تو ازدواج میکنم به محض اینکه حرفش تموم شد شاهزاده احساس کرد تغییری در وجودش رخ داده ناگهان ذهن او پر شد از چیزهایی که میتونست درباره اونا صحبت کنه شاهزاده خانم متوجه شد که به راحتی میتونه در مورد پیچیده‌ترین امور مملکت، جدیدترین اختراعات علمی و حتی اقتصادی کشور صحبت کنه. ریکت کاکل به سر با خود فکر کرد نکنه بیشتر از خودش به شاهزاده هوش داده باشه. اما بسیار مشتاق بود باهاش ازدواج کنه و نمیتونست یه سال صبر کنه. با این حال گفت: "گفتم یه سال به شما وقت میدم شاهزاده من." خوش بگذره بهتون. وقتی به قصر برگشت همه با تعجب شنیدند که شاهزاده میتونه با هوشمندی زیاد صحبت کنه. حتی فرمانروا به خاطر هوش و درایتش او رو به انجامن دعوت کرد. فقط خواهرش کمی ناراحت بود چون که میدید اون هوش و زیباییش زیادتره. البته اونقدر باهوش بود که درباره اون فکری بکنه. خبر تغییر شاهزاده همه جا پخش شد. خیلی زود شاهزاده ها دسته به دسته برای خاستگاری اومدند شاهزاده هوش جدید خودش رو به کار می برد تا فهم کدام یک از شاهزاده ها ضعیف‌اند، کدومشون کودن، بار یا حتی خیلی مغروره. سرانجام او ای رو ملاقات کرد که نه تنها دوست داشتنی بود، بلکه باهوش، ثروتمند و بسیار جذاب هم بود. اما احساسی به او نداشت. فرمانروا از قرار دخترش با ریکت کاکل به سر خبر داشت. با این حال به دخترش گفت دخترم حقیقت اینه که او خیلی زشته اما تو میتونی کسی رو انتخاب کنی که قلبت گواهی میده. هر کسی رو که دوست داری انتخاب کن. شاهزاده خانم تعجب کرد وقتی که دید فرمانروا اصرار نمیکنه زیر قولش نزنه. تقریبا آرزو داشت پدرش این کارو می کرد. حالا دیگه خودش باید تصمیم میگرفت حالا که میخواست هوش خودش رو به کار ببره برخلاف انتظار نمیتونست بخشی از عقل او میگفت ریکت کاکل به سر مرد راستگویه و منکر این نمیشم که روی من تاثیر گذاشته اما بخش دیگر پاسخ میداد ممکنه خوب و شریف باشه اما زشته باز یه قسمت دیگه در مورد شاهزاده میگفت واقعا مرد فوقلادهایه فیکون چه زوج خوبی میشید اما ریکتو بیشتر دوست داری اما شاهزاده چشمای زیبایی داره شاهزاده گفت باید به نادونی قبل شده باشم که نمیتونم تصمیم بگیرم ماها گذشت اما شاهزاده هنوز نتونسته بود تصمیم بگیره یک روز به امید اون که ذهن آشفتش آروم بشه به جنگلی رفت که ریکت کاکل به سر را دیده بود همینطور که قدم میزد به نظرش رسید صدایی مبهم از زیر زمین میشنوه مثل اینکه عدهٔ زیادی این طرف و اون طرف میرفتند بعد صدایی شنید صدا می گفت قوری رو برام بیار یه صدای دیگه می گفت مایتابه ما مسی رو به من بده صدای سومی فریاد می زد کمی هیزان در آتیش بریز ناگهان زمین باز شد زیر پاش غاری بود شبیه به آشپزخونه. پر از آشپز و کمک آشپز که برای جشن بزرگی غذا آماده می کردند. شهزاد خانم خیلی تعجب کرد که وقتی دید بیست آشپز یا حتی بیشتر از غار خارج شدند. رنگ پوستشون قهوه ای بود و به نظر می رسید در کباب کردن مهارت دارند چون گوشت ها تند تند به سیخ می کشیدند و روی آتش می گرفتند. آشپزها در یه دست قاشقی داشتند که با اون روی کبابار روغن می ریختند. هر کدومشونم پشت یکی از گوشهاش دوم روباه آویزون کرده بود بعد همگی شروع به آواز خوندن کردند شاهزاده خانم کنجکاف شد و پرسید ارباب شما کیه؟ این جشن برای چیه؟ سراشپز تعظیم کرد و پاسخ داد ارباب ما ریکت کاکل به سره فردا جشن عروسی او با دختر بزرگ فرمان رواست شهست خانم به نفس نفس افتاد. بعد به خاطر آورد که دقیقاً یک سال پیش بود که قول داده بود بیاد و برای ازدواج با ریکت صحبت کنه. در طول این مدت ذهنش مانند علک شده بود و همه چیز رو از جمله تاریخی رو که قول داده بود فراموش کرده بود. در حالی که نمیدونست چه کار باید بکنه به راه خودش ادامه داد. بعد دید که ریکت به طرف او میاد. خیلی سر حال بود اما شاهزاده خانم با خودش فکر میکرد که او هنوز خیلی زشته ریکت گفت شاهزاده خانم من حاضرم درست سر وقت مثل همیشه وقت شناس شاهزاده خانم گفت بله میبینم ریکت گفت میدونم که اینجا به انتظار من بودین شاهزاده خانم گفت واقعا اینطور فکر میکنید؟ ریکت پاسخ داد شک ندارم شاهزاده خانم ابروش و بالا انداخت و گفت حتی برای یه لحظه؟ ریکت با صدای استواری گفت چرا باید شک داشته باشم؟ شما خودتون قول دادید هیچ دلیلی نداشت فکر کنم زیر قول خودتون میزنید یا با من ازدواج نمیکنید. در واقع اونقدر مطمئن هستم که ترتیب جشن عروسی رو دادم شاهزاده متفکرانه نگاهی کرد و گفت ریکت بذار با تو رو راست باشم فکر میکنم به عنوان مردی باهوش همینو بخوای ریکت پاسخ داد بله البته شاهزاده خانم در حالی که صداش می لرزید ادامه داد خب بنابراین حقیقت اینه که فراموش کرده بودم باید تو رو ببینم چون من زمانی قول دادم که نادون بودم و حالا هم خیلی مطمئن نیستم که بتونم با تو ازدواج کنم ریکت خیلی جا خورد با لکنت گفت ا ام اما شاهصاد خانم گفت اما چی میدونی که وقتی نادون بودم در مورد ازدواج با تو مطمئن نبودم اگه فکر میکردی که با دادن حوش به من میتونی با من ازدواج کنی اشتباه کردی چون بیش از پیش خسته شدم این روزا همه چیز رو با دقت نگاه میکنم حالا خودمو از چیزهایی که زمانی دوست داشتم کنار میکشم شاید بهتر باشه منو به حالت اول برگردونی بدون اراده و بدون مغز. ریکت نه ناراحت شد نه عصبانی نمیتونست فکرشو جمع کنه چون اولین باری بود که کلمات رو گم کرده بود هرچه داشت از دست داده بود و کلمات بعدی شاهزاده خانم او رو بیشتر ناراحت میکرد شاهزاده خانم گفت میدونم به خاطر قولی که در زمان نادونی به تو دادم منو آزار نمیدی فقط یه نادون حیوان صفت میگه قول دادی و منو مجبور میکنه اونو قبول کنم ذهن ریکت دوباره فعال شد و گفت اما من تو رو دوست دارم میخوام باهات ازدواج کنم شادی من بسته به این ازدواجه شاهصاد خانم گفت اما تو منو مجبور نمیکنی چون وحشی نیستی تو باهوشتر از اونی که احساسات منو ندیده بگیری و بهش احترام نگذاری. ریکت میدانست که شاهزاده خانم درست میگه اما با این حال آروم نشد گفت اگه وحشی بودم حتما تو رو مجبور به ازدواج میکردم اما به نظر میرسه که باید تو رو از دست بدم چون باهوشم شاهزاده خانم آیا این انصافه آیا معقوله؟ هوش باید در زندگی امتیاز باشه شاهزاده خانم پاسخی نداد اما برای اینکه ریکت آرام بشه از اونجا نرفت و به های ریکت که با اشک همراه بود گوش میداد و گفت خواهش میکنم به من بگو به جز قیافه من چیز دیگی هست که ازش ناراحتی یا متنفر باشی شاهزاده خانم گفت در واقع نه غیر از این مورد همه چیزت مورد قبوله ریکت التماس کرد و گفت شاهزاده اگه از من خوشت بیاد محبت تو میتونه منو تبدیل به زیباترین مرد دنیا بکنه. ریکت با هیجان گفت که چطور همون فرشته ای که بهش گفته میتونه هر زنی رو که دوست داره باهوش کنه به شهزاد خانمم این قدرت رو داده که مردی رو که دوست داره زیبا کنه. شاهزاده خانم گفت حالا که گفتی داره یادم میاد چون این چیزی رو به منم گفتن. اگه در زمان نادونی من اونو فراموش کردم الان داره یادم میاد. اگر ریکت فقط از او زیبایی میخواست حتما الان زیبا میشد چون شاهزاده خانم از او خوشش اومد اما فکر کرد که زمان رو از دست داده ریکت گفت نه من احمق بودم شاهزاده خانم اگه نمیتونی منو دوست داشته باشی علتش اینه که من لایقش نیستم در این لحظه شاهزاده خانم لبخندی زد و گفت ریکت عزیز اگه بتونم تو رو مثل خودم زیبا کنم خیلی خوبه در واقع خواسته قلبی خودمه همینطور که شاهزاده می‌خندید، متوجه شد که واقعا میتونه این کارو بکنه چون زشتی ریکت داشت کم کم از بین میرفت و مثل لباسی دور انداخته میشد لوچی چشمانش از بین رفت و او میتونست در چشماش محبت رو ببینه پشتش که قوز داشت حالا صاف شده بود حتی بینیش که بزرگ و قرمز بود حالا بسیار زیبا شده بود شاهزاده خانم هرچه بیشتر به ریکت نگاه میکرد به نظرش جذابتر میرسید دیگه صحبتی از شکستن قول نبود بلکه فقط میخواست زودتر باهاش ازدواج کنه <تصفيق> فرمان هم با خوشحالی تصمیم دخترش رو قبول کرد و گفت دخترم انتخاب رو به خودت واگذار کردم و تو خیلی عاقلانه تصمیم گرفتی روز بعد جشن عروسی به پا شد و این زوج خوب و زیبا شکی نداشتند که خوشبختترین زن و شوهر دنیا هستند.